رسید به سبزآباد. یک طرفش دریای نیلی آرام بود، با خفت رست موجهای زره بسته که با نور خورشید هم بستر و درکش و قوس بودند و سوی دیگرش ساختمانهای بلند تفدیدهی بود که سوز خورشید تب به جانشان انداخته بود و درختان لیمو و گل ابریشم و خرزهره و بابل و سپستان آنها را دربر گرفته بود. نگاهی به پرچم انگلیس که شق و رق رودکل دیلاغش تو آسمان نیلی موج میخورد انداخت و صورتش تو هم رفت و رو زمین توف کرد و توف از دهنش بیرون نیفتاد چند ساله که من این بیرق رو همین جور میبینم که هیچ وقت نمیذارن که نبیش و آفتاب رنگ روش رو ببره عوضش بیرق خودمون که رو امیریه زدن آفتاب رنگ روش رو برده و سفید سویدش کرده حالا دلو میخواد رئیسالی سر از گور در بیاره و ببینه چه خبره هنوز خون جوانای تنگسیر تو نخل سونای تنگک خشک نشده خدا میدونه چقدر تنگسیر کشته شد مگه ما کم ازشون کشتیم خدا پونزده تا کشتم چه آدم نازنینی بود رئیسالی خدا نور تو قبرش بباره همه این کارا برای این بود که امروز این علم یزید اینجا نباشه که هست خدا بیا مرزدش که مرد بود دریا او را به سوی خودش می کشید برم آبی به صورتم بزنم و دست و پلم را تر کنم چقدر دریا آرومه؟ نه دیر میشه. زودی برم تا شب نشود و بلکه بتونم ورزای سکینه را بگیرمش حالا خیلی مونده تا هوا تاریخ بشه یه خوردم دم دکونه خالو و سلام و علیکی بکنم و چیزایی که می خوام ازش بگیرم و زود برگردم دواز سرای ترق و تروق کارخانه آبشیریم کنی و یخ سازی تو گوشش و دلش چکش کاری میکرد. تشنگی دردناکی بیخ گلویش را میسوزند. شکل غالبهای یخ که از تو کارخانه بیرون میامد، سرد و لغزان تو سرش جان گرفت. میدانست کارخانه دارد یخ میسازد. بغل کارخانه آبشیریم کنی، کارگاه آهنگری و تراشکاری بود که خودش سالها در آن کار کرده بود و برای راه آهن براز جنوب و بوشهر ابزار یدکی تراشیده بود. شکل اتاق گنده و ولنگواز کارگاه تو سرش زنده شده بود. تو آهنگرخانه استادکار بود و رئیس کارگاه خیلی خاطرش را میخواست. اما آن وقتها محمد خیلی جوان بود و پدکی که او رو سندان میکوبید کارگران دیگر نمیتوانستند آن را بلند کنند. یاد آن روزا به خیر چه روزگار خوشی بود اون وقتا جوان بودم و هیچ غمی نداشتم پول مثل ریگ بیابون تو دست و بالم بلوه بود چقدر زندگی زود میگذره حالا دیگه باید نزدیک چهل سال داشته باشم شد و بیشتر چه فایده داشت دسترنج اون همه زحمت و خونی جیر خوردن آخرش به باد رفت. آن وقت صورتش پیچ خورد و توف کرد. دهنش گفت توف اما توفی رو زمین نیفتاد. زبانش مثل سنگ سنباده شده بود. روزه بود و بیخ حلقش از تشنگی میسوخت و زبانش به سقش می باز به زره های سیمین و نیلی موجهای دریا نگاه کرد. چقدر درم خواست برم شنا تو آن ته ته دریا عیف که روزم و باید برم این گاب را بگیرم سکینه خیلی بدبخته هیچ مردی نداره کمکش کنه اگه نگیرمش نفله میشه چرا گاب وحشی میشه؟ او که آدم نیست باید کارم با این ورزایه سره کنم فقط یه چیز مجابشون میکنه گله مارتین خانه های انگلیسی ها کنار خیابان سبزاباد لب ساحل نزدیک هم نشسته بودند و یک خیابان میان آنها و دریا فاصله داشت دریا چون دیگه نیل نیم جوش سنگین و غلیز از پای ساحل راه افتاده بود و در کرانه افق فروکش کرده بود و سوز خورشید روی آن جوش میزد. کاشکی میتونستم برم تو این دریا گم بشم زیرا آب غمم یادم میره یاد جهاز پرس و آن غوزها و ته دریا گشتنا به خیر فقط گله مارتین مجابشون میکنه سرش سوخت و از درونش موج دردی برخواست و خواست از ته دل نعره بکشد و نکشید حاج محمد داییش بود و دکان کوچکی اول خیابان باریک دستک داشت که کنسرو و شکلات و بیسکویت و و خوراک و ترشی انبه و پکورا و کیک کشمشی می فروخت. کیک را خودش درست میکرد. مشتریهایش بیشتر انگلیسی ها و پولدارهای بوشهری بودند. وقتی محمد به دکان او رسید، دید حاجی پشت پیشکان دکانش نشسته بود و توی خیابان را نگاه میکرد. یک زن و مرد انگلیسی هم پشت میز کوچکی که تو دکان بود نشسته بودند و داشتن چای عصرشان را می‌خوردند. مرد انگلیسی دلاغ بود و سبیل کلفت بوری رو لبهاش رویده بود و شلوار کوتاه و بلور نظامی نازک که آستین کوتاه خاکی تنش بود زن پیراهن سینباز آستین کوتاهی تنش بود دوتا تا راکت تنیس و قوطی درازی که توپ تنیس توش بود پهلوی دو تا عینک سیاه گنده رو میز گذاشته بود. محمد از دو تا پله دکان بالا رفت و جلو پیشخان ایستاد. مرد انگلیسی نگاه چند شاور تلخی از زیر چشم به تن گنده و عرق آلود و پیراهن خیس او انداخت و آهسته به زنش گفت چقدر دیلاخه مثل اسکاتلندی ها میمونه. و بعد که پاشد ایستاد و رفت پهلوی دخل که پول حاج محمد را بدهد، از محمد کوتاه تر بود. خالو سلام. سلام زایر. خیر باشه. این وقت روز کجا؟ بوشهر بودم. اومدم برم دواس کار داشتم. آخه تو که همیشه شب می اومدی، خبری شده که این وقت روز برمیگردی خونه؟ تندان نیرومند و زنگ خورده محمد از زیر لبهاش بیرون افتاد. نه چیز تازه ای نیست. یه خورده زودتر اومدم برم ورزای سکینه را بگیرم. خبرداری که گاوش یاقی شده زده به نقل و پسر زارکفر رفته بگیرتش می شده. بله شنیدم. حال پسرکم خوب نیست. بچه خوبیه. دل و جیگر داره. آخر همش که به دل و جیگر تنها نیست. زور بازو هم لازمه. اونم جنگیدم با ورزای بحرینی که مول داره بمثل مثل قولک میمونه. بعد تا خندید فوری خنده از تو صورتش پرید. این ورزا را وقتی شوهر سکینه از بحرین آورد خیلی یه بود. من دیده بودمش. ورزای حسابیه. حاج محمد گفت و پولهایی را که از مرد انگلیسی گرفته بود تو دخل ریخت. بعد که مرد و زن انگلیسی رفتند، محمد با سر به طرف میزی که آنها پشتش بودند اشاره کرد و گفت خالو ما رمزون اینا رو تو دکونت را نده برکت دکونت میره من برای خودت میگم حاج محمد لبخندی زد و گفت زائر اینا مثل خود ما آدمند به ما کاری ندارن پولشون که سکه عمر نیست محمد به مسخره گفت نه خالو این دیگه نشد چطور با ما کار ندارن مگه این چند سال پیش نبود که جهازاشون آوردن خونه و زن و بچه‌امون به گله بستن و اون همه تنگسیر کشتن هنوز هم اینجا رو ول نمی‌کنن اصلا از اینجا دل نمیکنن. هر چیز خوبی هست مال ایناست آب شیرین خونک خنک مال ایناست های خوب پول زیاد اسب کالسکه همش مال ایناست میگی پولشون سکه عمر نیست اینا خودشون از عمر بدترن حاج محمد با خنده و مهربانی گفت زایهر. آخه من کاسبم من اگه جنسام را به اینا نفروشم پس به کی بفروشم؟ پنجوناشونم که آب میکشم و تاهر میکنم حاجی سردماغ بود روزه بود اما تا همین یک ساعت پیش خوابیده بود و تازه دکانش را باز کرده بود باز گفت زایر تو خودتم که هرچی داری از برکت اینا داری یادت رفته چقدر ازشون پول گرفتی؟ محمد رنجید و گفت چه برکتی؟ برکتشون تو سرشون بخوره پول فرنگی برکت نداشت که حالا به این روز افتادم مثل خربراشون کار کردم چه منتی به سرم دارن؟ تو انگر خونشون کار سه نفر رو خودم به تنهایی میکردم اگه اونجا بودی خودشون رو میدید که چه جوری کار میکردن نیم ساعت کار میکردن بعد سوارشون در میرف یه لیوان بیسکی سر میکششین من ده ساعت چکشکاری کاری میکردم آخرشم پولشون برکت نداشت باده هوا شد بعد آتشی شد و گفت من را با اونا تو یه دیگ بکنن به جوشونن، روغنامون با هم قاطی نمیشه. من با دست خودم تو جنگ تنگک، با همین توفنگ مارتینی که تو خونه دارم پونزده تاشون را کشتم. خدا رحمت کنه رئیسری رو که شیر مرد بود و دیگه مثلش آدم پیدا نمیشه. حاج محمد آرام و خنده رو به محمد نگاه کرد. محمد را میشناخت و اخلاقش دستش بود. میدانست که از یک جایی خلقش است. برای اینکه محمد همیشه آدم آرامی بود و سرش به کار و کاسبیش گرم بود، حالا او رو اینطور آتشی می دید. بعد با خوش خلقی گفت. زایر، حالا چقدر داری؟ دو هزار تومن شده؟ محمد با کچ خلقی جواب داد. خالو، تو که جای پدر من را داری، تو منو بزرگ کردی. از خدا پنهون نیست، از تو هم پنهون نباشه، همش هزار تومن دارم که اونم پادر هواس راست میگی، اول دو هزار تومن داشتم، برای اینکه پول کار کرده پیش فرنگی بود، رفتم دادم به امام جمعه که حلالش کنه، امام جمعه هم دو هزار ازم گرفت، هزار و هفصد تومن به داد که ایشالا دستم بشکنه هزار تومانش دادم به کریم هاش همزو، روزگار خودم را سیاه کردم، پاک خورد و آب خونکم روش کرد، صورتش تلخ و کبوت شد، دیگر حرفی نزد، دلش نمیخواست دنباله حرفش رو بگیرد. بعد از پیشخان کمی دور شد و گفت خانو یه تکسیم کلوفت به قدیه وجب داری به من بدی؟ میخوام برای مهارت تو دماغ ورزا اگه داری بده دستت درد نکنه اون سوانت رو هم بده تا نکاش تیز کنم اگه بتونم امروز بگیرمش خودش کاریه میدانست از این خرد همیشه توی پستوی دکان پدرزنش پیدا میشود حاج محمد رفت توی پس توی دکان و سوهان و سیم را آورد و به محمد داد. محمد به سیم نگاه کرد و از آن خوشش آمد. سیم سفت و جاندار بود و برای مهار خیلی خوب بود. سیم را گذاشت لب پیشخان و دو طرف آن را با سوهان سایید. سوهان تو دستش کوچک می نمود برای اینکه دسته چوبی نداشت و دسته کوچک سیخونکی از سر خودش داشت و اگر محمد میخواست مدت زیادی با آن کار کند اسباب زحمتش بود کارش را کوتاه و آسان انجام داد و وقتی خواست از دکان بیرون برود حاج محمد یک تکه کیک کشمشی توی کاغذی پیچید و داد به او و گفت این را هم ببر برای بچه‌هات به شهرو هم قدیه گل سلام برسون محمد راه افتاد از میان خانه های توسری خورده سنگی و نخل‌ها ها و بابل و ماسه‌های های گداخته دیوار قبرستان انگلیسی ها به پیشوازش می دوروور قبرستان خالی و خاموش بود دید چند نفر دارند تابوت سیاهی را با دستگیره های زرنما از درون کامیونی بیرون می‌کشند. چندتا چند تا زن و مرد هم کنار کامیون ایستاده بوده عجب جونو برایی هستن اینا. مردنشونم به آدم نمیمونه. یه چکه اشک از ششمشون در نمیاد. من هیچ وقت ندیدم یه انگلیسی گریه کنه. به سر رابر هم که مرد بابا براش گریه نکردن. شاید اینا اصلا عشق نداشته باشن.